حصل دفم واقعیت این است که ممه در خانه نیست و شاید هیچ کس نتواند دقیقاً بگوید که او کی تصمیم گرفت که دیگر اینجا زندگی نکند آخرین باری که او را دیدم یازده سال پیش بود هنوز همان بوتیک کوچکش را در این نپش داشت که کم کم به خاطر مایه تاج همسایه تغییر یافت و به مغازهی با اجناس جور واجور تبدیل شد به خاطر دقت و وسواس بی اندازه و سخت کوشی ممه همه چیز مرتب و آراسته چیده شده بود و او تمام روزش را با یکی از چهار چرخ خیاطی دومستیک که آن روزها در شهر وجود داشت صرف دوخت و دوز برای همسایه ها و یا پشت پیشخوان می نشست؟ و با آن شیوه دلپذیر دل پذیر سرخ که هرگز آن را از دست نداد از مشتری پذیرایی میکرد. شیوهی که در عین حال هم تو با گشاد رویی بود و هم حالتی خوددارانه داشت. آمیزهای از معصومیت و بیاعتمادی از وقتی که ممه از خانه ما رفت او را ندیده بودم اما راستش، با اینکه که ممه به عنوان فرزند خانده و دکتر همچون مهمانی ابدی در خانه پدرم سعیم بودند، دقیقاً نمیتوانم بگویم که او چه وقت اینجا آمد تا با دکتر در این گوشه خلوت زندگی کند. یا چگونه حاضر شد تا این حد سقوط کند که معشوقی مردی بشود که از معالجه او دریغ ورزیده بود. از نامادری هم شنیدم که دکتر مرد خوبی نیست و بحث و به گومگوی طولانی با پدر راه انداخته و خوشیده او را متقاعد کند که ناراحتی ممه زیاد هم جدی نیست و حتی حاضر نشده از اتاقش بیرون بیاید به هر حال اگر بیماری دختر گواخیروی موقتی و گذرا هم بود دکتر باید ولو به خاطر آن همه پذیرایی که در عرض هشت سال زندگی در خانه ما از او شده بود معاینه ای از او می کرد چه شد فقط این را می‌دانم که یک روز صبح دیگر نه ممه در خانه ما بود و نه دکتر آن وقت نامادریم دستور داد در اتاق دکتر را ببندند و تا سالها بعد که مشغول دوختن لباس عروسی من بودیم یادی از او نکرد ممه سه چهار یک شنبه پس از آن که خانه ما را ترک کرد برای نماز ساعت هشت به کلیسا رفت. لباس ابریشمی گلدار و زننده‌ای پوشیده بود و کلاه ای به سر داشت که به یک دسته گل مصنوعی یا بود. همیشه چنان ساده و بی‌آلایش بود که اغلب در خانمان او را پا نمی دیدم. به همین خاطر کسی که در آن یکشنبه به کلیسا وارد شد به نظرم ممه دیگری آمد. آن ممه‌ای نبود که ما می‌شناختیم. میان زنها در صف جلو به مراسم گوش میداد و به خاطر انبوه جور واجورش حالتی خشک داشت که ظاهر تازه و پیچیده‌ای به او میبخشید. تازگی زننده‌ای که از چیزهای جلف مایه گرفته بود. در صف جلو زانو زده بود. حتی آن حالت ایثارگونی همراهی با مراسم میز در او تازگی داشت. حتی طرز سریب کشیدنش مایه از آن آمیانگی زننده و پرزرگ و برقی را داشت که هنگام ورود به کلیسا کسانی را که فکر میکردند او هنوز خدمتکار خانه ماست مبهود کرده بود و دیگران را که هرگز ندیده بودندش به تعجب انداخته بود من که در آن هنگام قاعدتاً سیزده سالم بیشتر نبود حیران بودم که چه چیزی باعث این دگرگونی شده چرا ممه از خانه ما غیبش بود و دوباره در آن یکشنبه با لباسی که از او بیشتر یک درخت کریسمس ساخته بود تا یک خانوم سر و توی کلیسا پیدا شده چنان اسراف لباس پوشیده بود که میتوانست خانوم دیگر را در مراسم یک یکشنبه عید نو نونوار کند و حتی از بقیه زلم زلمزیمبوهایش برای خانوم چاوری هم لباسی در بیاید وقتی مراسم تمام شد مرد و زن همه کنار در ایستادند تا او را هنگام بیرون آمدن از کلیسا تماشا کنند. روی پله های در اصلی در دو ردیف صف کشیده بودند و فکر می کنم در انتظاری که آنها می کشیدند و در رفتار کاهلان و وقار ریشخند آمیزشان شاید چیزی پنهانی و از پیش اندیشیده نهفته بود همه خاموش بودند تا ممه از در بیرون آمد، چشمایش را بست و دوباره ها را کاملا هماهنگ با چتر آفتابگیر هفت رنگش باز کرد. با آن کفش پاشنه بلندش که ظاهری مسخره و تابوس به او میداد به میان صف دو پشت مردها و زنها رفت تا اینکه یکی از مردها راه گذر دایره را بست. ممه وسط دایره بود جا خورده و آشفته سعی می کرد لبخند بزند لبخندی تشخ خص آمیز که به اندازه‌ی سر و وضعش مصنوعی و پرزرق و برق بود اما وقتی از کلیسا بیرون آمد و چترش را باز کرد و راه افتاد بابا که نزدیک من بود مرا به طرف جمعیت کشید طوری که وقتی مردها دایره را بر روی بستند پدرم برای او که حراسان و شتاب زده به دنبال راه گریزی بود راهی باز کرد بابا بیان که نگاهی به مردم بکند بازوی ممه را گرفت و با حالت و غیافهی مغرور و ستیز جویانه که معمولاً انگام انجام کاری بر خلاف میل دیگران به خود می گرفت او را از وسط معرک بیرون برد مدتی گذشت تا فهمیدم که ممه رفته بود معشوقه دکتر شود و با او زندگی کند آن روزها هنوز مغازش باز بود و او مانند سنتی ترین خانومها به مراسم اشای ربانی می رفت بیان که از آنچه چه دربارش فکر می کردند یا می گفتند آزرده شود انگار باقی نخستین یک را فراموش کرده بود ولی دو ماه بعد دیگر در کلیس دیده نشد آن روزها را که دکتر در خانه ما زندگی می کرد به یاد دارم. سبیل مشکی و تابدار و طرز نگاه کردنش به زنها با آن چشمان حریص و شهوتبار سگانش در خاطرم هست. اما یادم هست که هرگز به او نزدیک نشدم. شاید به این دلیل که در نظرم جانور عجیبی بود که وقتی همه از سر میز بلند می شدند همچنان پشت میز می نشست و همان علفی را می که خر می خورد. سه سال پیش که بابا مریض شد، دکتر از گوشه خلوتش بیرون نیامد، همانطور که از شبیه که زیر بار پذیرفتن زخمی ها نرفته بود، یک بار هم بیرون نیامد، و درست مثل شش سال پیش که از رفتن به بالین زنی که قرار بود، دو روز بعد معشوقش شود دریغ کرده بود. پیش از آن که شهر دکتر را محکوم کند، در آن خانه کوچک بسته شده بود. اما من خوب می دانم که ممه پس از آنکه مغازه بسته شد همچنان چند ماه یا چند سال در اینجا زندگی میکرد. کرد. مدتها بعد بود که مردم فهمیدند ممه ناپدید شده زیرا آن یاد داشته بینام و نشانی که به این در چسبانده بودند گویای همین بود. بر اساس آن یاد داشت دکتر معشوقش را با دستهای خودش کشته بود و در باغچه خانهش دفن کرده بود زیرا می ترسید که مردم شهر به وسیله او مسمومش کنند. اما من پیش از ازدواجم ممه را دیده بودم یازده سال پیش بود و داشتم از مراسم دعا برمیگشتم گشتم که زن گواخی روی آمد دم در مغازش و با لحنی شاد و هندکی آمیز گفت کابلا داری عروسی میکنی و به من هم خبر نمیدهی؟ شهردار میگویم بله قاعدتا باید این اینطوری باشد سپس حلقه تناب را که در یک سرش ریش ریش های زنده تناب تازه بریده دیده میشود میکشم دوباره ای را که آدم هایم برای پایین آوردن جسد دکتر بریده بودند گره می زنم و یک سرش را از روی تیر سقف میگذرانم تا حلقه آویزان می شود چنان محکم است که میتواند. در مرگ بسیاری از آدمهای نزیر شرکت کند شهردار خود را با کلاهش باد می‌زند و صورتش از تنگی نفس و افراد در مشروب رنگ به رنگ می شود و برای امتحان دوام و قدرت تناب به آن نگاه می‌کند و می‌گوید: تنابی به این نازکی نمی توانسته او را تا بیاورد و من در جواب می گویم همین تناب سال تاقت ننوی او را داشته و او سندری را پیش می کشد و کلاهش را دست من میدهد و تناب را می گیرد و از آن آویزان می و چهرش بر اثر این تقلا برافروخته میشود بعد دوباره روی صندلی می و به آن سر تناب آویزان خیره می شود. می غیر ممکن است این حلقه تا به گردن من هم نمی رسد. و در این حال می‌بینم که او عمدن غیر منطقی رفتار می‌کند و دنبال راهی است تا تدفین را عقب بیندازد. توی صورتش نگاه می‌کنم و به دقت وراندازش می‌کنم. به او می‌گویم: هیچ توجه کرده اید که او یک سر و گردن از شما بلندتر بود؟ و او بر برمیگردد و نگاهی به تابوت بود می‌اندازد می‌گوید: با همه اینها مطمئن نیستم که او با این تناب دست به این کار زده باشد. من اطمینان دارم که به همین شکل بوده و او هم میداند اما نقش این است که دفع الوقت کند چون از اینکه خود را به مخاطره بیاندازد می‌ترسد ترسش از این بران بر رفتن بی هدفش پیداست ترس دو پهلو و متناقضی است به تعویق انداختن مراسم تدفین و تدارکان سپس وقتی بالای سر تابوت می‌رسد روی پاشنه هایش و نگاهی به من می اندازد و می باید او را آویزان ببینم تا قبول کنم. باید این کار را می کردم. باید با آدم هایم می گفتم تابوت را باز کنند و مرد داراویخته را دوباره همانطور که تا همین چند لحظه پیش بود سر جایش آویزان کنند. همان وقت دخترم داغتش را نداشت. بچه تاقتش داغتش را نداشت. و چرا هم نباید میاورد اگرچه مرده ای را به این شکل دوباره سر جای خود برگرداندن و آزردن جسمی بی‌دفا و آشفتن و مسترب کردن مردی که برای نخستین بار آرام و آسوده خوابیده منقلبم می‌کند اگرچه جابجا جا کردن جنازه ای که با آرامش و متانت در تابوتش قرار گرفته مخالف روش و منش من است ولی باید دوباره آویزانش می کردم تا معلوم شود این مرد قد و اندازش چقدر است اما این کار غیر ممکن است و من به او چنین می گویم قاطرتان جمع باشد که من حاضر نیستم چنین دستوری به ها بدهم. اگر خیلی دلتان می خواهد خودتان این کار را بکنید و هر اتفاقی بیش بیاید مسئولش شمایید یادتان باشد که ما نمی دانیم از مرگش چقدر می گذارد. از جایش تکان نخورده هنوز کنار تابوت است اول به من نگاه میکند بعد به ایزابل و بعد به بچه و دوباره نگاهش به سوی تابوت بود میچرخد ناگهان قیافه در درهم و تهدید کننده می شود میگوید باید بدانید که به خاطر همین چه اتفاقی ممکن است پیش بیاید و من منظورش را از این تهدید میفهمم به او میگویم البته که میفهمم مسئولیت سرم می شود. و او دست به سینه و عرق ریزان با حرکات حساب شده و مسخ که بانمود می کند تهدیدم می کند. به سوی من می آید و می گوید: ممکن است از شما بپرسم چطور متوجه شدید که این مرد دیشب خودش را دار زده؟ منتظر می شوم که نزدیکم شود. بی حرکت می مانم و به او خیره می شوم تا اینکه نفس گرم و تنش به صورتم می خورد. من گاه می استد همچنان دست به سینه و کلاه به زیر بغل در این حال به او میگویم وقتی شما به عنوان مقامی رسمی از من بپرسید بسیار خوشحال میشوم که به شما جواب بدم با همون حالت و قیافه رو در رویم می ایستد وقتی با او حرف میزنم کوچکترین نشانه ای از تعجب و اضطراب از خود نشان نمی دهد میگوید طبیعتا سرهنگ دارم از شما رسما سوال میکنم هر سر نخی که بخواهد به او خواهم داد مطمئنم هر قدر هم سعی کند موضوع را بپیچاند مجبور خواهد شد که به یک موقعیت سخت تن در دهد مگر اینکه صبور آرام باشد به او میگویم این مردها به این دلیل جنازه را پایین آوردند که نمیتوانستم بگذارم همان جاویزان باشد تا شما تصمیم بگیرید که سری به اینجا بزنید من دو ساعت از به شما گفتم به اینجا بیایید و این همه وقت طول کشیده تا شما این دو قدم راه را بیایید. باز هم تکان نمیخورد. رو در رویش می ایستم و از آیم تکیه میدم. کمی به جلو خم می و می گویم، تازه او رفیق من بود. پیش از آن که حرفم را تمام کنم لبخند پرتعنی میزند، اما جایش را عوض نمی کند. نفس گس و سنگینش را به صورتم میدمد. میگوید: از این ساده در, در دنیا پیدا نمی شود مگر نه؟ و ناگهان لبخندش را میخورد. میگوید: پس میدانستید که این مرد میخواهد خودش را دار بزند. آرام و صبور با اطمینان به اینکه قصد او فقط پیچیده کردن کارهاست به او میگویم. دکرار میکنم. وقتی فهمیدم که او خودش را دار زده اولین کاری که کردم این بود که آمدم پیش شما و این موضوع مربوط به دو ساعت پیش است. و او با حالتی که گویی سوالی از او کرده و چیزی را مشخص نکردم میگوید. داشتم نهار میخوردم. و من میگویم میدانم. حتی فکر میکنم که از خواب نیمروزتان هم نگذشتید. دیگر نمیداند چه بگوید. به بهقب برمیگردد به ایزابل که کنار بچه نشسته نگاه می کند نظری به مردها و سرانجام به من می اندازد اما غاپش حالا عوض شده مثل اینکه دنبال چیزی می گردد تا فکرش را لحظه ای به آن مشغول کند به من پشت می کند به سوی پلیس می رود و چیزی به او میگوید پلیس سرتکان می دهد و از اتاق بیرون می رود پس از آن برمیگردد و بازویم را میگیرد و میگوید: میل دارم در آن اتاق با شما حرف بزنم." حالا دیگر لحنش کاملا عوض شده. لهنش هیجان زده و مسترب است. و که به اتاق بغلی وارد میشوم و فشار نامحسوس دستش را بر بازویم احساس می کنم، میدارم که چه میخواهد بگوید. این اتاق بر اکسان یکی سرد بزرگ است. نور از سمت باغچه با اتاق می ریزد در اینجا می توانم چشمان مستربش را ببینم و لبخندی را که به حالت چشمانش نمی خورد. صدایش را میشنوم که می گوید سرهنگ شاید بتوانیم موضوع را جور دیگری حل و فصل کنیم و من بیان که فرصت بدم حرفش را تمام کند ازش می پرسم خوب چقدر؟ فان وقت و به مرد دیگری بدل می شود. Thank you.